سو قدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت ناز کم کن که در این باغ بسی چون توشه گفت گل بخندید که از راست نرانجید ولی هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت گر تمعداری از آن جام مرسعه می لع ای بسا دور که به نوک مجعت باید زفت تا عبد بوی محبت به مشامش نرسد هر که خاک در میخانه به رخسار نروفت در گلستان ارم دوش چو از لطف هوا زلف سنبول به نسیم سهری میاشفت گفتم ای مسند جمع جهان بینت کو گفت افسوس که آن دولت ویدار بخوفت سخن عشق نه آن است که آید به زبان ساغیا میده و کوتا کنین گفت و شنوفت اشت حافظ خرد و صبر به دریا انداخت چه کند سوز غم عشق نیارست نه نهو